خب احتمالاً تا الان با تعریف اول و دوم همراه بودید الان وقتش که بریم سراغ تعریف سوم هیپنوتیزم و اون تعریف این هست که هر جایی شما موفق بشید مجموع توجه یک فرد رو پهنای هوشیاری یک فرد رو یا خودتون رو تفاوتی نمی‌کنه اینجاست که در واقع خود هیپنوتیزم یا دیگر هیپنوتیزم مطرح می شه. هر وقت بتونید توجه یک فرد رو قفل کنید روی یک یا چند ایده محدود و مشخص یا بیاید توجه خودتون رو کل تمرکز خودتون رو متمرکز کنید روی یک سری ایده های مشخص روی یک سری احساسات مشخص و همزمان هر چیز دیگه رو از پهنای هوشیاری خودتون خارج کنید چون هوشیاری انسان ذاتا محدوده پهنای توجه شما محدوده و اگه یاد بگیرید بازی کردن با این پهنای توجه خودتون یا دیگران رو و هدایت کنید پهنای توجه خودتون رو یا پهنای توجه یک فرد دیگر رو روی یک موضوع روی یک ایده روی یک احساس شما موفق به انجام هیپنوتیزم شدید و همونطور که میبینید احتمالا مثال های زیادی بشه زد از زندگی روزمره زمانی که یک فرد ذهنش قفل میشه روی یک مشکل خاصی که اخیران براش بیش اومده یا زمانی که فرد درگیر رابطه احساسی میشه همه اینها مثال هایی هستن از هیبنوتیزم که در واقع شما توی ادامه این دوره تکنیک های هیبنوتیزم رو یاد میگیرید که به عبارتی میشه گفت این تکنیک ها هنر هدایت کردن و دایرکت کردن پهنای اتنشن و ترجیح یک فرد یا خودتون روی یک یا چند ایده محدود، معین و مشخص میتونه باشه. حالا برای اینکه این تعریف جدید برای شما ملموس‌تر بشه، من یک سری مثال رو بیان می‌کنم، قطعاً براتون خیلی مفید خواهد بود. مثال، زمانی که رانندگی می‌کنید، زمانی که دارید درس میخونید مطالعه میکنید و توجه شما کاملا قفل یک موضوع هست اون که دارید تلویزیون میبینید و کاملا توجهتون متمرکز شده روی یک فیلم روی یک موضوع که ممکنه اونقدر تحت تاثیر قرار گرفته باشید نسبت به تاسووت اون فیلم در واقع که شما حتی حرف دیگران نشنوید یا حتی گریتون بگیر اگه فیلم قمنگیزیه یا خیلی خوشحال بشید با وجود این که فقط فیلم هست اما واقع چون شما هیبنوتیز میشید روی یک ایده یا مجموعه اصول محدود و معیین این باعث میشه که ذهن شما وجود شما کاملا اثر به پذیر از اون موضوع یه مثال جالب دیگه که خیلی متفاوتتر میتونه باشه و دید شما رو خیلی باز میکنه زمانی هست که شما دارید خواب میبینید وقتی شما خواب میبینید کابوس میبینید ممکن بیدار شید در حالی که دارید نفس نفس میزنید عرق ریختید کلی کلی مسترب هستید و علت اینه که شما توی خواب زمیر ناخودآگاهتون متمرکز شده روی یک داستانی روی یک قصه ای که واقعا حقیقتم ندارم، شما اونقدر باورش کردید که میبینید تیپنوتیزم واقعا قدرت اثرگذاری داره یعنی وقتی شما هپنوتیزم میشید روی یک موضوع روی یک ایده ای حتی در خواب یا توی هر سطح شیاری دیگه ای ف نمیکن لزوم من بیداری نیست. می بینید که اثر میذاره حتی فیزیولوژی بدن شما کل سیستم بدن شما هم تغییر میکنه و این عضوی از چهارچوب هیپنوتیزم که شما بتونید کاملا تونل های واقعیت مختلف رو که حالا توی تعریف ذکر خواهم کرد براتون، بتونید کاملا شیفت کنید جهش کنید بین اینها و در واقع این هست که فرایند هیپنوتیزم رو یک فرایند خیلی جالب و اثرگذار میکنه